اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و ضبحا به نام خداوند بخشنده بخشایشگر سوگند به اسبان دونده در حالی که نفس زنان به پیش می رفتند. فالموریات قدحا و سوگند به افروزندگان جرقی آتش فالمغیرات صبحا و سوگند به حجوم آوران سپید دم فاثرن به نقعا که گرد و قبار به هر سو پراکندند فوسطن به جمعا و ناگهان در میان دشمن ظاهر شدند ان الانسان لربه لكنود چه انسان در برابر نعمت های پروردگارش بسیار ناسپاس و بخیل است و انه على ذلك لا و او خود بر این معنا گواه است و انه لحب الخير لشدید و او علاقه شدید به مال دارد آیا نمیداند در آن روز که تمام کسانی که در قبرها ها هستند برانگیخته میشوند و ان که در درون سینه هاست آشکار میگردد ن ربهم در آن روز پروردگارشان از آنها کاملا باخبر است